بكون علی منتظر بمانین خب به ما بفتن منتظر باشی الان سلام <درسانسيان> علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی الحمد لله الذي جعل اللسان میزان لعقل الانسان و آلتن لإظهار اسرار الجان الصلاة والسلام على من فی في اقول هي عقول و بالفتن والأفهام سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد و الأرضين بأب القاسم محمد <تصفيق> و علی آله الطاهرين الطاهرین المكرمين المکرمین المنتجبین الدائم نبضاهم و علی من اجمعین من قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحج ابن الحسن که عليه و آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة ولیم و حافظ و و, ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه و توعا و تمتعه و فیها تدیلا جهت تأجیل در فرج مولانا حجت ابن الحسن الاسگری علیه ما السلام و السلام صلوات قرائ ختم کنید. با عرض سلام مجدد به و بزرگواران و و روحانیون و طلاب گرانقدر و پژوهشگر که از نقات مختلف به دور هم جمع شدیم تا انشاءالله در جهت پیشبرد اهداف نظام اسلامی گامی را ولو کوچک برداشته باشیم خدا رو شاکریم که ما رو در این جمع نورانی حاضر کرد امیدواریم که در این لحظاتی که در خدمتتون هستیم بتوانیم گامی رو در جهت روشن شدن فضای درسی خودمون وظیفه ما در آینده و دینش تقریبا دقیقی از خواست دین نسبت به خودمون داشته باشیم ما در نظام حوزه و طلبگی چه باید بکنیم راه را چگونه برویم مقصد کجاست و با چه روشی و تا انشاءالله بتوانیم با تشخیص درست مسئولیت و وظیفه، انشاءالله توفیق عمل به وظیفه هم داشته باشیم اون موضوعی که بر ما معین شده بازخانی عناصر اجتهاد با تکیه بر فقه معاصر الحمدلله شیعه از زمان امام پنجم و ششم علیهم السلام مباحث اجتهادیش برپا و برقرار بوده که ائمه میفرمودن به یارانشون برید تو میلس و فتوا بدهید احکام رو برید استنبات بکنید و برای مردم بگویید در این سیزده چهارده قرنی که گذشت مخصوصاً بعد از عصر غیبت صغرا اجتهاد به صورت سازمان یافته درآمد کتبی در فقه اصول رجال درایه و همچنین کلاس تشکیل شد و این علوم به صورت رسمی و مصوفا در رأس وظیفه حوزه های علمیه و علمای دین قرار گرفت و به حمد تا حالا رو به پیشرفت و قول عرب تقدم بوده است علم به معنای علم حصولی که ما داریم و با تحقیق میخواییم به دنبالش بریم این حد یقف ندارد چرا شما معصوم نیستیم دستی به وحی نداریم و بناس از کانال‌های چشم و گوش و کتاب و نقل سخن به دنبال اثبات واقعیت و حقیقت باشیم ازا با گذشت زمان علم هر هرچی پیش میرود که تکامل می رسد به عنوان مثال علم اصول فعلی رو اگر شما نگاه کنید با اصولی را که سید مرتزا رزوان الله تعالی علیه نوشته از زمین تا آسمان فردی کند من همین دو سه هفته پیش جای بودم یا آقایی داشت اعتراض می‌کرد به حاجی همه علوم در حال پیشرفتن شما آخونده چرا پیشرفت نمیکنید؟ گفتم چطور گفت هنوز میگی شیخ مفید چی گفت سید مرتضی چی گفت شیخ توصی چی گفت همش تو ده دوازه قبل موندید در حالی که علم امروز هر روز در حال پیشرفت است گفتم عذر شما موجه چون رشته شما نیست وارد نیستی که چرا تو این پیشرفت هست و اگر از شیخ مفید و تو توسی و امثال ما صحبت می شود به عنوان صاحبان نظره اول یا به یکی از صاحبان نظر نام برده می شود و الا اون فقهی که جناب شیخ مفید می از یا کلامی که او داشته است با کلام فقه امروز و اصلا قابل مقایسه نیست شیخ توصی که تبیان نوشته است به معنی باقی الان باید باید, باید شرک فهراز علامه توا توایی علمیزان یاد بگیرد اونقدر سطح و افق بالاست که او هم اگر الان زنده بود با اون علمیتی که در اون زمان داشت کم میابود باید باید باید باید باید, باید, باید چیزی یاد بگیرد در فقه همینطور الان فقه ما خیلی مترقی تر از زمان انصاری است که ما دریه کنیم قرد نست که به دو قرن قبل است یعن در فقاهت و در بعد ابتکارم حتی نوع آوری های داریم که شیخ انصاری نداشته چه فرچه چه اصول و شما چون رشدت این نیست خبر نداره و نمیدانی و تو نمیشه اثبات کرد اصطلاحات علمی وارد نیستی در فلسفه همینطور در علوم مختلف علوم در حال پیشرفتند. رفتن تحولات جهانی ارتباطات همگانی همه باعث شده زمینه ها و انگیزه های جدیدی به وجود بیاد و جرقه هایی که شبه ایجاد کرده، سؤال ایجاد کرده باید پاسخ داد و چه بسا پاسخ بسیاری از این هم با مبانی یکی تا کنون گفته شده قابل پاسخ نیست امروز ما احتیال داریم که در علم اصول نظریات جدید را ابداع بکنیم در فلسفه همینطور، در منطق همینطور علم منطق علم ثابتی نیست مللا صدادی که دوست رو اضافه کرد و الان هم احتیاج داریم وقتی که ما با دنیا بحث میکنیم با مکاتب مختلف عقلی و معرفتی یک غذایایی رو به کار میبرند که ما با این ابزارمون نمیتونیم جواب بدیم باید قواعد جدید و اصولی اختراع بشود چون چ اون قضایا در این ترازو جا بگیرد اون موقع توضیین بکنیم که این حرف شما درست است یا غلط رضا علم تو همه بخشهاش در حال ترقی و پیشرد و ابتکار است یه نمونه از کنم که همین جزه بحث ماست کنم انشاءالله به عنوان مسئله دوم میاد مختزیات زمان و مکان زمان و مکان دخالت دارد در اثبات حکم فعلی فقهی حالا تو کتاب های مکاس و امثال یکی دو تا مثال میزدم یک خطابستون اگر نمیدونم از کسی قرض گرفتی زمستون میتونی به او یک هم و همون یکو تحویل بدی گفتن نه چون یه ارزش نداره یه چند تا مثال کوچکی میزدن اما اینکه آقا زمان و مکان تو همه چیز اثر داره اینو بحث نکرده بودن امام می اومد مطرح کرد دخالت سیاست و امور سیاسی اجتماعی در اثبات و فهم احکام چیزی تازه است و امور دیگر که حالا چون یک ساعتم بیشتر ما وقت نداریم به عنوان مقدم میخواهم اعز کنم که دوستان همون توی مقام معظم رحبه فرمودن ولو ما از نظر سیاسی و اجتماعی در یک پیچ تاریخی تمدنی هستیم در تولید علمم همینطور دلاخره ما با دنیا ارتباط داریم دین اسلام هم خاتم دینها میدانیم و کاملترین دینا که پاسخوی همه نیاز بشر تا روز قیامت است، شباهات هم فوج فوج داره میاد سوال میکنن جواب میخوان و منطقی هم باید جواب بدیم نمیشه بگیم به ما چه مربوطه کتاب ما این چیزا ننوشته نیامده است بله بعض از شباهات قدیمی با لباس جدید ارزی شده و ما جواب با لباس جدید بدیم اما بعض از شباهات اصلا سابقه نداشته و باید پاسخ بدیم با روجوه به کتاب و سنت رجوع به کتاب و سنت و عقل ابزار میخواد ابزار جدید میخواد تا بتوانیم همه شبهات رو پاسخ بدهیم و این معنی که دشمن رو منکوب بکنیم واقعیاتی میخوایم کشف بکنیم تو بحث مدیریت، تو بحث تربیت جامعه شناسی، روانشناسی و علوم مختلف بلاخره اسلام نظر دارد یا ندارد اگر بگید ندارد پس دین ناقص است و آخرین دین و کاملترین دین نیست اگر میگید پاسخو از و دارد میگن پاسختون رو بگویید اینکه مرحوم امام در وسیعت نام اشنوش حوزه علمیه باید فعالیتش بگونه ای باشد که پاسخ سوالات 100 سال آینده را زودتر تهیه کرده باشد یعنی 100 سال دیگه بناسی شباطی بشه بود که نو و تازه از حال ما باید آماده کرده باشیم اینها رو حالا اون که فعلا تو مرحله نرسیدیم الان خیلی از سوالات جدید میاد توش موندیم و باید بریم تحقیق بکنیم مدت ها طول می‌کشه پاسخ بدیم و 15 سال آقا ای گفت تو لبنان یک حالا مسیحی یا یهودی لبنانی گفته قرآن مگه نمیگه هر کس میتونه مثل این قرآن بیاره آیات تحدی گفت آورده سه تصوره اختراک کرده بعد اون رفیقمون گفت حالا اون موقع اینترنت و اینا تازه آمده بود و رواج فیدو کرده بود گفت دادن به کویت و عربستان جوابیدن قانه کننده و مصر قانه کننده نبوده حالا اومده قوم و باید پاسخ بدیم داد به من تا سه تصورم علی سوره اب اسم سوره رو گذاشته بود. ما سوره رو کنیم بگره نمیدونم آله امران نصف فلان تسلیم ایمان یه سوی خورس تا سوره کرده بود ما نشستیم اینا رو بررسی کردیم اشکالات ادبی فلسفی فلان الاخر از 17 تا وضعه 14 تا وضعه ایراد این های فنی دارد و کار دست بشر است وعی نیست اینجوری نیست حالا گفتیم و فرستادن رو که توش موندن آخه این چه شبهه ای است که کشورهای اسلامی که در تفسیرم کار کردن کوویز مصر عربستان نتونستن جواب بدن بعد اینجای دور باید جواب بدن و برود یعنی عقب این ما حالت انفعال و دفاعی داریم هنوز اینکه از 100 سال قبل امامی میگه شبوهات آینده رو قرن آینده رو از حالا باید آماده کنید و لازمه که ما اصلا شبوهات صد سال آینده از حالا بشناسیم پاسخ بدیم، آماده کنیم تو فایلمون بذاریم که 100 سال بعد اشکال شود بهنم جوابش. علما تو کتاباشون دارن. چطور خل از شواهد میگیم بابا بو علی اینا رو جواب داده. در فلسفه ما اینا جواب داده شده. در کتب ما نه جواب داده شده. در فقه هم همین طور. خب، یکی از برکات انقلاب اسلامی همین بود. ما رو درگیر کرد با نظام عالم و با جامعه جهانی و افکار مختلف چه کلامی، چه فقیهی، اجتماعی هم در همه اقتصاد، مدیریت درگیر شدیم میگن پاسخ بدید اصلا شما اول انقلاب کنند شما چیجایی میکنه حکومت تشکیل بدید مگه بلده حکومت تشکیل بدید امام گوه بله بلد مگه نیرو دارید مگه بله میتونیم ولی حقیقتا کنبود داریم نیروهایی که پاسخگوی نیازهای روز ما باشن تو همه ع ولذا ما چون استقای پیدا کردیم با دنیا کاری ندارم اون این شبه میکنن دشمنن یا واقعا جاهلن به الاخره شبه آمده سوالونه جواب میخوان، یالا شما جواب بدیم با مبنا و استدلال نه که من میگویم استدلال که باید بپذیر منطقی باید باشه خب این لازمه که ما مشکلاتمان را بشناسیم راه حل کشف مشکل را پیدا بکنیم از ابزارهای لازم که به وجود آوردیم استفاده کنیم موضوعات خام را بپزیم جوابهاشو به دنیا عرضه کنیم این وقت میبرد یعنی هنوز ما تو خیلی از جهات جواب نداریم به عالم خارج از اسلام بریم چه به داخل اسلام خودمون؟ حالا چه در محیط تسنن؟ چه تشییو؟ سوال نداریم چرا؟ چون به روز هنوز اونطور که توقع هست نشده ایم و اصولی که میخوانیم فقه که میخوانیم خوانیم، علوم دیگه میخوانیم و همش کپیه گذشته است. اونا رو حفظ میکنیم کنیم، امتحان میدیم، نمره می گیریم، که هم به ما میدن دکترا و حضرت حجت و, و المسلمین و الی آخر. تو دانشان تدریس میکنیم چندتا چند تا مقاله می نویسیم و هم آی اس ام ایس ار به ما چی میده الی آخر. و... خب مشکلات چی شد؟ با اینا که شما کدوم مشکل رو حل کردید؟ الان مشکلات ما تربیتی داریم. روانی داریم، اخلاقی داریم، تو جامعه ما کم داریم علمی به نام علم، اخلاق با نداریم تو حوزه این مداره طلاب مصفه و بعض شایدان کم کم دارن کار می اخلاقم اخلاق هم غیر از مععزه است اخلاق علم، موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، مبادی داره قیاد داره، نتیجه داره، روش استدلال دارد خب، غربی ها بیشتر از ما کار کردن چون رو به وحی متکی نبودن پس که اخلاق چیه لازمه یا نه مواددیشه در مقام تات چ؟ با... ما نداریم به عنوان علم اخلاق تو حوزضل رو نداریم ما. که علم اخلاق ما هم جواب بدیم به یه مارکسیس، به یه مسیحی به یه یهودی به یک یه تونی علم آخر که اخلاق اسلامی چ و چگونه باید رفتار کرد به چه دلیل؟ کتاب از ما میخوایم این جا و صادات یه مدارال فلسفه فلس چیزی که ما نداریم کار نکردیم یعنی یکی از برکات ارتباط با مردم با جهان همینه داریم نقاط ضعف خودمون رو میشناسیم کمبودهای ما را داریم درک میکنیم اون ها کجاست همش این کتابا رو از اول جدول مقدمات بخون تا کفایه درس خارج هم این اصطلاحام بدیم بریم ۲ امتحان بدیم و الی آخر خیال کنیم خیلی کار کردیم در حالی که نه این ریل را باید اصلاحش کرد و تکمیلش کرد راه همین راه هست تحقیق منابع ادله اقلانیت اما این ریلی که تا حالا شده ریلی بوده است که برای فقه های فردی چیده شده اونم تو محدوده تنگ یکی دو تا کشور به نام ایران و عراق الان دیگه مرزها ها برداشته شده نه تنها مرزهای کشور اسلامی که 57 کشور اسلامی الان ما داریم حدود 200 کشور داریم مرزها برچیده شده الان شما با همین وسایل کوچیکی که در اختیارتون هست من بهش میگم دورگوی همراه. که اون فارسی رو پاس میداری انواع و اقسام صوت ها و ها چه در ارسال چه در گرفتن آزادیه با کل دنیا الان شو میتونی در ارتباط و با کل کتابخانه های دنیا همه چیز داره میره و همه چیز داره میاد ذهن جوانم هرو هر پر کرده الان جواب میخواد و باید پاسخگو باشیم میگه با بکنو نکنم درست نمیشه حرامت و حلاله اصلا جوانم بود دلیل میخواد می به چه دلیل چی میگی شما آه. رضا باید کاری کنیم که اجتهاد ما مفید و پاسخگوی جامعه اصلا رسالت من و شما و این لباسی که من و شما به تند کردیم همینه که یا ایوهر رسول بلق ما اون زل الگ تبلیغ به کار ساده ایه تبلیغ ما خیلی که برو توستان منبر برو یکم حرف روزن یکم گیری از مردم میگه خوه الحمدالله یه دهه محرم رفتیم تبلیغ این کوچیک از تبلیغه تبلیغ این پیام خدا را برسان اول خودت خوب بفهم سانیان بیانش هم داشته باش هم باید جامعه شناسی‌ش رو هر جا چگونه حرف بزنی و ارتباط برقرار کنی تا بتوانی منتقل کنی معارف رو مستقیماً خوندن الان یعنی چرا مساجد قالبا کم شده اون مقداری که قبلن استقبال بود نیست چون کسای منبر میرن کسای پاسخ گوان که یا جوونو درک کنن یا موضوع رو درک و چیت 하다 کوئی جبونه میون تو مسجد تو حسینیه بله رهای محرم اونها میون اون رو عشق و سوزی که دارن و یه سینه میدن خدا حفظه رفت فصل‌های آینده نمونش ماه محرم کاس ایام دیگه چرا خب اون سوال داره توی جامعه ای زنیونه همه چیز به گوشش خورده و همه چیز هم دیده حالا سوال میکنه میگه چرا ایشون میگه آقا تو اینطور نوشته تو میگه چرا تو قران نوشته, نوشته؟ میخوام میگم حالا سوالش درسته وا من بعد او رو بتونم قانع کنم سفین آقا تو قرآن نوید رو روا امام صادق فرمودن خیلی ادب بکنین سرش می‌ذین ببینین هیچی نمیگه ولی به حرف شما اتنانا نمیگه خب ما تو حوزه بعد آماده کنیم خودمون رو بالاخره ما مبلغین به معنای واقعی و وسیعش تدریس تبلیغ امام جماعت بودن تبلیغ تراه بودن تبلیغ مدیریت تبلیغ نویسندگی تبلیغ همه اینا مصاق تبلیغان ولی تبلیغ مفید ما لازم داریم خب چه باید بکنیم؟ و اناسر اشتهاد چیست؟ باید یه مشتهدی باشیم به درد روز بخوریم مشتهدی که نتونه مشکلات زمان خودش را بفهمد نتواند ارتوارت برقرار کند نتواند پاسخ برای شبهات پیدا کند اون مشتهد روز و مفید نیست ولی آدم خوبی باشه و مقدس هم است ببینه نداره ولی تو مشتهدی نیستی که بتونه مشکل گشا ها اینکه این امام باغر علیه السلام فرمودن عالمون یون تفعو به علم اول من سب این الف آبید. یعنی همین مال خودش نبوده یا عالمی که یون تفعو به علم مرگونتون از علمش استفاده بکنن او از هفتاد هزار آبد یعنی آبد واقعی نه منافق و دروقه که فقط ریش و تسبیح نه از آبد واقعی یعنی مثل سلمان زندگی میکرد از هفتاد هزار آبد بالاتر است چرا؟ چون مردم را از ظلالت به هدایت میبرد از ظلمت به نور میبرد از نقص به کمال میبرد از هفتاد هزار عابد بالاتر نموزا. کی ما میتونیم چنین عالمی باشیم؟ همین دیگه قرآن را خوب بفهمیم، روایات را خوب بفهمیم، احکام عقلی را خوب بدانیم، ابزارهای تبیین رو خوب بدانیم، ارتباط با جامعه هم بلد باشیم، قضای به روز بر سر سفره مردم بگذاریم. من پنج فاکتور رو در نظر گرفتم که اینا رو با این وقتی کمی که ما داریم خیلی مختصر بیان می کنم که برای اجتهاد مفید این پنج عنصر حتماً باید ملاحظه و رعایت بشه یک، توجه به مقصد و شریعت یه بحثیست تاریخ زیادی هم نداره در حوضایش مطرحه به نام مقاصد و شریعت. و اون این که همه احکام بر اساس مقاصد شریعت با تنظیم بشه مثال خیلی ساده شما اگر نقطه الف بخواد به نقطه ب بروید اگر خط نداشته باشید معلوم به نقطه ب برسید یعنی ial اینورتر رو یه مقدار اینورتر بره مثلا کجاش باید اینجوری کنید کی از نقطه الف می توانیم به ب, ب که نقطه ب, ب کاملا مشخص باشه خطش رو به و الف و موقع خط رو احکام دین بر اساس مقاصد شریعت باید تنظیم بشه یعنی ادله رو ما با توجه به مقاصد بعد معنا نه فقط قرآن تنها به کاری نداریم آیه اینه مناشی و از اینه روایت اینو گفته مناشی میشه دیارات ارتضایی متابلی فلان پس نتگیش اینه ای این قرآن و سنت بر اساس مقصد شریعت که دین را آورده است با تنظیم بشه یعنی تفسیر متنی کتاب و سنت بر اساس مقاصد و شریعتی که ثابت شد که مقصود شریعت چیست بر اون اصلا تنظیم بشه ما چون بیت رو از اول داشتیم و در بیت تا مدت دو قرن در اختیار مردم بودن زیاد به این بحث احتیاج نداشتیم چون امه بودن دیگه میگفتن مطال رو سؤال جواب اهل سنت چون نداشتن بیت اسمت و تهارت رو و این ارتباط با وحی رو که در وسط مصف نداشتن اونا زودتر وارد این بحث شدن ولی چون دستشون خالی بود از ادله، نمیدونستن خیلی از احکام چیجوره حل کنن. گفتن باید ببینیم مقصود شریعت چیست. وقتی مقصود شریعت تنظیم کردیم احکام رو بر اساس او تنظیم می کنیم. این بحث در اهل سنت سابقه طولانی دارد. بعدها اولین کسی که این بحث رو کرد جناب قزالی در کتابی صورت مبوب و مدون آورد. و اولین بار هم توسط محمد ابن علی ترمزی از علمای اهل سنت، این بحث مطرح شد البته در رابطه بود یک کتابی در باب صلات فقط مثلا خدا نماز رو بر چی بر ما واجب کرده برای چی واجب کرده خدا سبحانه و تعالی جواد عامل یه بار میفرمودن همین حوزه وقتی که اساتید تدریس میکن اطلاعیه میزنن دیگه فلان آقا فلان درس در فلان مکان فلاس از شروع میشه بعد از اطلاعیه فلان آقا داره دوره 24 و لمعه شو بیان میکنه فلان آقا این کتابو دوره نمیدونم 22 میشه داره میگه ال اخر شون یک معظه تنز آمیز داشتن این بنده خدایی که 24 بار لومه رو تدریس کرده، یک بار اصلا کلش رو ننیورده بالا این اصلا فکر رو برای چی داره تدریس میکنه. فکر به چه درد ما میخوره ؟ با فکر میخوایم چی کنیم جایگاه ف کجا اون فقط کلش رو تو لومه انداخته یه بار تا آخر رفته خونده حالا لومه دو, دو دار. چقدر پولکیشه نمیدونم. بار دوگوم بارستان فقط لمه تدریس کرده او فقیه نیست. تو نفهمید شیخ رو برای چی میخواد بخونه و برای چی داره میخوانه و تدریس میکنه خب در رابطه با اهل تسنن اونا چون زیاد کار کردن و سابقه شون زیاده خیلی از علوم همینطوره قربی ها چون با وح مرتبط نیستن خیلی از مسائل حتی فلسفه اخلاق رو از ما جلوترن خیلی از مسائلشون با تجربه و تفکر خودشون خواستن به دست بیارن ولی و به پایه فلسفه اسلامی نمیرسن ولی تلاش زیادی کردن ما ببرکره و چون همه چیز مثل قضای آماده آماده بوده برای ما و شباهات هم انقدر نبوده فضا بسته بوده زیاد احساس نیاز نمیکردیم دنبال اینا بریم ولی الان معلومه خیلی این امر واقعیه و تأثیر داره اونا اسمای مختلفی گذاشتن در رابطه با این مقصد و شریعه مقاصد و شریعه محان احکام، مبدع شریعی سر دایی، موجب وصف موثر مستدعی علت حکم سبب احکام ملاک مناد احکام در موضوع فقه در رابطه با احکام شریعی مقصود شریعه از, از جعل احکام چیه؟ اول باید مقصودو رو بفهمیم بعد احکام رو از عدل بر اساس مقصود ب معنی کنیم اون رو بعد فتوا بدهیم البته در شیعه هم از اون دیگه تقلید کردن شهید اول فازره مقدارت میزای قومی که اینا هم همین بحثا و استلاحات و حتی تقسیم بنده این رو آوردن کم کم لفظ مقاصد و تشریع یا مقصد و تشریع باز شده بعد در ده, ده های اخیرم الان در میان ما ها کاملا این بس مطرح هست ما قلابه بر کتاب و سلخ یه مقصد و داریم. احکام مثلا برای چی جعل شدن؟ واجب از حرام است، صحیح است باطل است، ضمانت، نمیدونم فلان جزئیات، شرطیت و الی آخر، اینا برای چی جعل شدن؟ خب البته در اهل تشیع تا حالا نمیگفتن مقاصد ترجیح بودن علت و حکم، حکمت و حکم چیه؟ عمدتاً همین بودن حکمت. بعد فرق بین علت و حکمت، بعد میگفتن به همین مقدار، اما باز نشده بود که ما دنبال چی گردیم. خود غزالی میگه مقاصد الشریعت قسمه ضروریات هست اون چیزی زندگی انسان بر اون متوقفه باید باشه حاجیات هست اون چیزی که اگر نباشه موجب زیق و گرفتاریه در میان مردم میشه و برطرف شدن اینا باعث توسعه سوم تحسینات و تزیینات یعنی چیزی که باعث زمینه است برای رسیدن به اخلاق حسنه و عادات پسندیده بعد جناب قزالی میاد ضروریات را میگه اینا پنج قسمت شاره چرا چیزها را واجب کردی یا حرام کردی ایشون میگه مقصود پنج چیز است یک حفظ دین دو حفظ جان سه حفظ عقل چهار حفظ نفس پنج حفظ مال اینا اهداف قایی به خاطر اینا جعل شدن که خدا میگه حرام است واجب است چون پنج تا هدف باید تنظیم بشه بر. خود غزالی برای ضروریات مثال میزنیم میگه آقا امران روح حکم قصاص دیه و زمان سمانت اگه اینا نباشن جامعه درستی پای نمیگیرد در رابطه با حاجیات میگیم که اباهه طیبات مزاربه مساقات اگه اینا نباشه زندگی برای بچه‌ها تنگه برای تزیینات مثال میزنه به ازاله نجاست، جلد تهارت ستر اورت اون اگه نباشه اخلاق در جامعه حاکم میشه نباشه زندگی سخت نیست بعد. الان بعض از کشور هستم مبدونش لخ میگردن من یه بار توی کشوری بودم با یه آقایی بودشیم صحبت میکردیم ساخته مغالوی آقایی آقای لخت لخت داشت همه میکرد خونهش گفتم نگاه کن فلانی چقدر بی داره مشغول چستشی خودشه گفت نه بی نیست این بی حیاست <تصفح> از طالب من تو نگیم بی حیا خود او که حیا نمیفهم خود در یه کشوری کنار دریا رفته بودیم جنس هم کمو تو چیه چیه؟ یه جنس مؤنثی سن شب همو لخت در رو توی دریا اومدیم من تعجب کردم چی این مایه چیه من آدامه بعد یه دفعه متوجه شدم اصلا هیچ چی لباس نداره سرو انداختیم پای ما این ورا یه 5 دقیقه من کلامو بالا کم می‌دارم من تو وایسای جرمن دار اینجوری نگاه می‌کنه اصلا بعت نمیداند تو یونان جزیره اینجوری تو خود آمریکا بعضی جای شهراشون ها اصلا اینا خوب دارن اینجوری زندگی می‌کنن اینجوری زندگیونه بعضی با حیوان هستن زندگی می کنند و نجاست و تهارتی تو این و خیلی چیزهای دیگه بعد آقای شهید اول همین پنج مقصدی را که قضالی گفته تعییف کرده مثال هم زده گفته واجبت و حرام برای حفظ دین مثل چی؟ وجوب جهاد و قتل و مرتد که اگر اینا باشن جامعه اسلامی دیگه باقی نمی مانند. برای حفظ جان مثال می به قصاص دیه و دفاع از نفس و دیگران برای حفظ عقل مثال میزند تحریم مسکر و جعل حد شریعی برای کسی که مسکر رو استفاده میکنه این عقل رو نگه میداره حفظ نسل تحریم زنا زنا حرامه، لواط حرامه، مساقه حرامه، مغاربت با حیوان حرامه قذف حرامه و مخالفت با حد دارد اینو برای حفظ نسل، اما برای حفظ مال، دوزدی حرامه، سرقت کردن، قصف کردن، خیانت، راهزنی و هرکون از الان یه تعذیر و حدودی دارد. فاضر مقدار همینطور میزای قومی همینطور همون تقسیمت کمپلن آوردن اینا که مقصود شریعت ما بیابیم و نماز واجب شد چرا؟ فلان چیز حرام شد چرا؟ اونه چرا دارد؟ و باید بحث بکنیم و این شراها رو به دست بیاریم و بر اساس اینها حکم صادر کنیم و صادر ص ببین آیا این حکم من در جهت مقصد شریعت ها توی خطیش میره به هدف بخوری یا نه اگر نمیخورد نه تقسیم بندی هایی هم داره مقاصد شریعتون که انسان کشف میکنه به حسب اعتبار و درجه بعضی مقاصد انسان یقین میکنه مقصد شریعت همینه بعضی زن داره و از داد دنبال مقاصد یقینی ما یک یقین باید داره چون یقین حجت اون دو دیگه حجت نیستن به اعتبار مقصد مقاصد جعل احکام یا دنیاویه یا اخرویه خیلی از این واجبت حرامی پفتن نتچه تو همین دنیا بر ما ظاهر میشود بعضیش نتچه مول آخرت سوم حقیقی و عرفی بعضی از مقاصد شریعت صرف اعتبار است با اعتبار معتبر درست میشود بعض یا نه وجود حقیقی دارد واقعا این احکامش رو انجام بدی واقعا یک تحول ایجاد می شود در خارج ولو تو نبینی ولو تو متوجه نشوی یعنی الان خیلی سوال می کنم آقا عقد چه معنا داره انکه تو و زبدتو قبل تو حالا ما چه بگیم چه نگیم ها چه اثری داره یا آقا ملکیت خریدم و پروت آنها نگیم اینو به اماعاتات جایزه این اثر داره بله اثر داره بله دیدنی نیست با چشم سر نمیشه ببینیم. همین قبل تو، اغزر و تو، انکه تو، همین به تو، تو اثر تکلیمی خارجی دارد. دیگر بعضی از تقسیمات، این به حساب سنخ وجود بود. بعضی مقاصد وجود حقیقی دارن، بعضی اعتبار صرف هم. این همه جای بست داره. بعضی ها ابتدایی هن، بعضی ها نهایی هن. بعضی ها مقصد وسط راه هن، بعضی مقصد نهایی. این همه بکنه و اونگاه مقصد وسط راه را و ابتدایی را فدای مقصد نهایی باد کند همین قانون الام و الام که در باب تزاهمات است استفاده میشه بعضی از مقاصد معتبرن بعضا غیر معتبر ما از کجا تشخیص بدیم؟ این مقصد که شعر گفته مقصد معتبر است یا غیر معتبر برای تشخیص مقصد اصلا مقصد واقعی کدوم است اون راهها ها و ابزارهایی دارد یه تقصیم دیگه عقلی و نقلی محدود مقصود آیا اون چیزه که عقل می فهمد یا نه محدود مقصود کجاست؟ اون چراییم که نقل بیان کرده است ما نه به عقل تنها می توانیم متکی باشیم و نه به نقل تنها گاهیم گوه از راه عقل ما مقاصد را میفهمیم فهمیم در بحث عقل ما توضیح داره بشود این مطلب اول پس از شریعت اسلام مقصدی دارد همه احکام باید بر اساس اون مقاصد تنظیم بشن. به چه دلیل؟ من 3 تا آیه قرآن فقط میخوانم خود قرآن پر است. متو این به عنوان تیتر و عنوان و باب کتاب اصول ما نیامده. مثلا نگاه کنید قرآن کریم در خیلی از جا احکامو میگه آخر یه لام مییارد. مثلا لقد ارسلنا رسولا بالبينات ما پیغمبر فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب کتاب که توی آسمانی و المیزان. چرا؟ علت ارسال پیغمبران و کتاب های آسمانی و میزان چیست مردم قائم به قسط بشوند مقصود این است پس ما باید بینیم قسط چیه و قیام ناس به قسط یعنی چی احکام بر اساس اونو حکمی ما با بکنیم میکنیم اگه یه احکمی ما صادر کردیم که به قسط منجر نشد اون حکم اثر ندارد و باطل است مرون شهید متحریه تعبیری دارد ما دین را برای عدالت می‌خوایم نه عدالت را برای دین چون عدالتی امر فطری فطریست عقل می‌فهمه رو دین باید خودشو هماهنگ کنه با ادالت دینی که توش عدالت نباشه اون دین قابل قبول نیست اون حکمی که نتیجهش ادالت باشه حالا فردی یا اجتماعی فرق نمی‌کنه نباشد اون حکم باید درش گرفته بشه و متوقف بشه و ساده ولی آیه قرآن باشه ولی اون نص قرآنی هم باشه باشه قابلینو بحثای خیلی مفصلی در فقط یه اشاره میخوام بکنم خیلی از آیات قرآن دله داریم از جمله آیه روزه یا ای الذین امنوا کتب علی کومو سیامو من قبلکم لعل تکون تتقون ما روزه رو برای شما واجب کردیم که با تقوا بشوید حالا اگه روزه انسان میگه ان چش نباشه اون روزه واجب نیست لاالله تا خیلی جا تو قرآن لاالله داریم این کار رو کردیم لاالله لاالله لاالله حالا فرق لاالله با لامه تعلیلشه حالا بحث فنی علمیش خیلی جا کلمه ذالکه داریم قرآن میگه دور بد علیه مظللت و آل مسیح نه ذالکه بر نهم یک فروم باعث الله ذالکه به ما و کانی اته ما بر یهود ذلت را روا داشتیم این رو نابودشون کردیم با زندگی مظللت باز نسبینو کردیم چرا این زللتیم این کافر شدن یعنی هر جا کفر باشد ما بلا میفرستیم هر جا توحید باشد ما آسایش و رفاه و عروج برای شما میفرستیم به ما اصلا و هر جا اسیان باشد ما عذاب میفرستیم یعنی عذاب علتش اسیان بندگانه یعنی اگه بندگان اسیان نکنه ما عذاب نمی بعضی جا اصلا یه کلام مستقلی داریم اصلا مفهوم تعلیل توشه مثلا ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب قصاص را خدای متعال برای این قرار داده است که جامعه زنده بشود. می گفتن تا 11 عجیبه خب حالا تا تمومش میکنیم. چرا قصاص جاری می شود؟ تا حیات اجتماعی. لذا اگر در جای شما دید قصاص بکنید، حیات اجتماعی در از بین نوبت قصاص جاری کنید. مثال مختصر بعد از جنگ جمل امیرالمومنین با عایشه چه رفتاری کردن سوارش نکورش کردن چند تا محافظه براش فرستادن گفتن برو مدینه حرمت پیغمبر رو نگرد و از خونه بیرون نری تو شرح تجید ما خوندیم در رابطه امیرالمومنین چی میگیم میگیم مخالفو هو آه تجید مطالعه نکردی بخش پنجمش آن. حضرت علی یه مخالف داره یه محارب داره محاربوه و فسقه و مخا... محاربوه کفره کسی که علی رو قبول نداشته باشه فاسقه کسی که علی رو به جنگش بیاد کافره طبق این که خود سنیان قبول داره هرکی با امام زمان و حاکم زمانش در بیفته کافره قتلش واجبه و امروانی چرا آیش رو نکشتن چون میدونن اگر بکشن کشتاره بدتری رو میفتن حیات جامعه یه پیش نمی آید بدتر می شود به هم می ریزد قصاص نکردن احترام زاهرشم گوشتن بودم برد و دیگه شیطنت نکن حالا تلوزه که کشته شدن خب لکن فیلقصه حیاتون پس اگر دردیاجه من قصاص بکنم حیات به هم می ریزد نه اونجا قصاص جاری نمی شود آیه دیگر خود من انوالهم صدقتن تو تهره هم و تو زکی از بها زکات بگیر. تا تطهیر بکنی اینها را و تذکیه کنی اینها را به وسیله زکات. هدف گرفتن خمس و زکات چیه؟ حالا اگه گفتیم زکات من عام داره در اینجا. تطهیر مردم و تطهیر اموال و تطهیر نفوسشون بشه لذا در احکام زکات شما تو فقر میخوانید انرومه به معبولانشون فهموندن پیش مردم زکات ببینید شما مبادر ما بگید ماله چقدر ببینم و عقل ندارید خونه انبار مردم وارد نشو مگه خودش اجازه بده بعد هرچی خودش گفت هرچی خودش گفت عمل کن اگر این مقدار گندم دارم ندارم بارسی کنم ببینم بیشتر داری یا نه شاید دروغ بگه حق نداری داره اگر خودش یه مقدار تقسیم بندی کردی که از این مال خودوم رو باید برداری. خودش گفت نه از یه قسمت دیگه بردار خوب از قسمت دیگه وردار ها تو زکات رو بگیر تا تدکیر کنی پس تدهیر و ناس و تذکیت و ناس این میشود علت برای گرفتن زکات و در جایی که گرفتن زکات نه نقص مردم رو تدهیر بکنه و نه خود اموال او رو تدهیر بکند نه اونجا زکات نگیر خب نکته دوم که در رابطه با اجتهاد در فقه معاصر باید به با او بپردازیم لحاظ مقتضیات زمان و مکان زمان و مکان در صدور احکام و فتح دخالت داره. چرا؟ فقه بر ما چی تاییم؟ موضوع فقه چی از نظر اسطلاحی که دو فوق فقط فقیقی نویشتن. میگن فعل مکلل اولاد این ناقص فعل یا حالات یا اوصاف مکلل بعدم فقط مکلل نیست فعل و وصف و حالات فرد یا جامعه فقیق باید از هم حاله فردی تحریف کردن یه نقص دومش فعل و حالت و وصف مکلل یا جامعه مقیبه به زمان و مکان است. یعنی زمان در من اثر میذاره مکان در من اثر میذاره یقینا همینطوره علناوب شما توی یه زمین ساده تن میدوی توی زمین زمینی که گل باشه نمیتونی تن بدهی. الان مکان در شما اثر گذاشت زمان هم همینطوره زمان هم اثر میگذاره توی یه زمان شما حال داری نافله بخونی مستحب بخون توی یه زمان حال نداری بخونی مکروه مستثنی نیست که هیچ اصلا مکروه چون بری نافله بخونی چرا حال نداری هوا گرمه زمان و مکان اثر داره بله زمان و مکان هم در فرد اثر داره هم در جامعه و زمان و مکان امور حقیقی هن. حالا در اسفار خونده یا میخوانید در رابطه با زمان ده تا نظریه هست بعضی گفتن اصلا معدون سرک هست جز خیال چیزی نیست زمان بعضی گفتن زمان یعنی واجب الوجود این طرف تفسیر بودن طریقه افراد بشه این وسط هشت تا نظریه دیگه است. قول تحدیه این که چرا زمان امریس وجود دارد در خارج است مفهومی ما از انتظار انتظام میکنیم چه مصداق خارجی دارد مثل وجود رابط الان زیبی استاد است چون ما الان است که تو خارجی نمیتونی ببینی یا بشنوی یا لمس کنی اما یقین داری ما وجود رابط در خارج داریم فلاسفه ما که گفتن وجود کلشه این از امور اضافی به حسب طرفه اگر ما یه مضاف تو و مضاف تو خارج بدان که اضافه هم تو خارجی چرا؟ چون نسبت بدون طرفه این محقق نمیشه همینطور اگر مفتدا تو خارج خبر تو خارج نسبت حکمه این هم یقیناً با تو خارج باشه چون نسبت واقعیتی جز انتصابه به طرفین این ندارد چون بو آقا عصف کجا از ما هرچی نگاه میکنی ذهب استاده از خب زيدا میبینن اسم این آغاز کیه؟ آدم اینو حالتش منه. کجاست؟ خب وجود رابطه یه وجود رابطه که با هیچو چیز در نمیشه ولی وجود خارجی دارند. خب زمان و مکان از امور خارجی هستند، مفهوم دارن، اینها برنسابشون قابل انطباق هم هستند. خب در رابطه ما مسائل فیزیکی یقینا زمان و مکان در خطوحات خلقت دارن. من فقط اشاره می وقت کم است. زمان و مکان هم در موجود خلقت دارند. مثلا مکلف احکام دارد آدمی که غیر مکلف است احکام ندارد او چون قبل از 15 سالگی تکلیف نداریم، بعد از 15 سالگی تکلیف دارید از زمان بعد خود موضوع اثر دارد تا دیروز ما 15 سال نشده بود تکلیف نداشتی امروز شده 15 ساله تکلیف داری در متعلق حکم مثلا به ما میگن دفاع واجبه جهاد ابتدایی واجب نیست و وجود اگر به دفاع بخورد میشه واجب اما اگر متعلق حکم شد جهاد این جهاد ابتدایی این هم نه اینجا دیگه احکام وجود ثابت نمیشود چون دیگه دفاع نیست جهاد در. شما داری این بارده کشور کفت میشه به حسب حکم آقا سقیر حکمی دارد کبیر حکم دیگری دارد مثلا یکی حکم دارد که ندارد به حسب ملاک سفر و هزر تو هزر نماز شما چند رکتیه چار رکت. در سفر چی؟ سفر. حالا در سفر نمیشه من دو رکتی نخونم چار رکت اون نخواهی میلار که نداره نماز چار رکت مگه جاهل باشی؟ زمان و مکان اثر داره؟ در امتصال عجل و قدرت چون ما قدرت داری کار رو انجام میدی تکلیف ثابت میشه یه جا آجزی آدم آجز تکلیف لذا زمان و مکان در پنج مرحله دقارت دارد هم زمان هم مکان موضوع، متعلق، حکم، ملاک و انتصال که تو کلابای سوری کمتن بلیمه میشه و بحث بشه سه نکته ای که در اجتهاد در فقه معاصر باید مرد نظر قرار بگیره دخالت عقل در فشت ما همه شما احکام را از شتاب و سنت در میوانیم خیلی عقل هم و احکام عقل دخالت داره چطور عامل از منابع ماست اگر احکام عقل رو در نظر نگیریم خیلی از احکام که کسبات شریعه آم است مخصص شما رعایت نکردیم تخصیص نزدی یا دلیل حکم محکوم حکم عقل حاکم برام که دلیل نقلیه اومدی به محکیبم دلیل محکوم عمل کردیم اما دلیل حاکم وزشین کنا این غلطه حاکم ممکن بر محکوم. این که عقل ارزش دارد یک میتواند قانون گذار باشد دو تمام دین و سعادت ما به عقل گره خورده فقط آیه فقط من میخونم که اهمیت عقل را بدانند از جمله در صدور خطا و استنباط ان فی ذلکل آیات لقوم عقلون خودم میگه این حرفایی که ما میزنیم آدمای عاقل نشانه ای می بینن بر حقایق تو اول اوگل تا تو دینو بفرمين نباشه ازن دینو نمیفره آیات لا آیات النقام تفکرون این نشانه های ای آیاتی که ما داریم این موجزاتی که میفرستیم این پیروزی ها این نعمت ها و انواع چهوش نمیبینین همه نشانه است برای کسی که فکر میکنن فکر کار عقل است تفکر کار عقل است این کسی اگر عقلش کار بکنه میفهمد. اگر نکنه که نمیفهمه ما یه لب داریم یه قشق, قشق همین بدن ماست هست لب هم روح ماست. هست خدا میگه این آیات که ما میدرسیم صاحبان الباب لب اونا نشانه ها را میفهمن و به زن نشانه پی میبرن از کسی اگر لب نداشته باشد اصل دین رو نمیفهم لعول نها نهیه یعنی عقل اونا محفظ منع عقل داره آیات ما برای آدمی عاقل است، هایی دیگر افلا یا تدبرونن هم علا قلوبن اقفال ها این کسانی که ما پیغن برون باشون حق میزن کش میکنن اصلا گوش نمیکنن قرآن را گوشنشون بستن و تدبر نمیکنن یا نه قلباشون قفل خورده میخوان ولی در بسته هست داره درست کلزنشون چرا تدبر نمیکنیم تدبر یعنی چی؟ یعنی دبر چیزی را دیدن یه شعی رو آینده شو محاسبه کردن این تدبر به کجا می انجامد نتیجه چه می شود این یعنی تدبر تدبر کارم عقل هست یکی از حجت عقل از عمم همینطور رسیده حالا فراغان از در که فرسو کافی مراجعه می کنید علا حجت و فیما بین العبار و بین الله العقل عقل عقل و حجت بین خدا و بندگانه فتوه هم یکی دیگه اخوام شرع مهم یکی کی گفت این واجبی یا حرامه عقل پت پا در میانی خدا به واسه عقل رو محاکمه میکنی که چرا کردی و چرا نکردی چرا ترک کردی چرا انتصال نکردی هلو فی خیلی ما بین العباد و بین العقل از امام ششون و همون روایت معروف از امام حفظم علیه السلام است. لله الناس السلام حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه بعد میرسن به عمل باطنه تو فلو اقول عقل درست مثل پیغمبر حجت یعنی هرچی میگه باید کشتو کن و خدا با همین عقل رو میکنه. میکن رضا عقل به احکام عقلی یقینا اینا دخالت دارند در اثبات احکام شرمی حالا محلولش هر چقدر باشه لذا هیچ کدوم از گروه ها و ملل و نهل در حجیت اصل عقل تشکیک نکردن در محدوده شو هم اختلاف دارن بله کسی نگاه در عقل حجت نیست حالا عقل در فلسفه به چه معناست در اخلاق در علم کلام در مبادی اصول در عرف به چه معناست حالا این هم بعد از بحث بشود که این عقلی که ما با شما احقام کنیم کدوم عقل است خب اما نکته مهمی که در باب اقل هست که اقل در سه جاده خالت داره یک در قاعده ملازمه که مرموع مستقل به مستقلات کل ما حکم به اقل حکم به هم نا اقلی یک اقلوهای مخوش اقام مستقلی دارد بیان میکنه به بی ملازمه خود به شگه میشه دو در مقام استدلال اون موقع قیاس میشین صحرا کورا حق و وسط یا شکل یک اینو عقل قبول دارد هر ماده ای توشگیر یک واجد شراعب بود نتیجهش لازم است و عقل حجت اونجا سفون در بار استرزام با با عقل از ملزوم به لازم پیمی برد مثلا نگه مقدمه واجب واجب از شراعب اونوی که قبول دارد توشتری سابق میشه یا نمیدونم امر بشه نهی از زب می کند یا نمی کند این است. یا نه نهی از شی آیا داله بر فساد اون مندیون ان هست یا نه حقود این برده آری یا نه توی مورد کل محدودات تصور وقت مورد سموره درست آیده ملازمه استدلال و استلزامات عقلی شهارومی نکته ای که در رابطه با فقه معاصب باید رعایت شود، رعایت مسلحت و مفسده در مقام اثبات احکام فعیه تمام احکام اسلام بر اساس مساله و مقاسه ما اعتبار صرف نداریم روایتی داریم در عیون اخبار رضا محول صدوح رزونات علیه اونو تقییم کردن از اماموزو روایتی داریم جد دوست که خدا هیچ چیز رو واجب نکرد مگر به خاطر مسلحتی که داشت هیچی رو حرام نکرد مگر خاطر مفصدهی که داشت. لذا تو همه احکام ما دومال مسئله مفاصله البته تا کجا میتونم اصفات کنه مسئله دیگرید. ولی هر حکمی دارای یقیناً مسئله هست. هر حکمی تحریمی یقیناً مفصده ای دارد که خاطر او, او رو بریم کشف کنیم و اگر دیدیم در یه جا یه حکمی مسئلهت ندارد نمیشه اون رو عمل کنیم این واجبه. یا در یه جا عملی مقصده ندارد نه هیچ به حرمت شد اگر فرض کنیم ما کش کردیم به دست آوردیم که فلان عمل ارتکابش هیچ اشکالی نداره مفسده زا نیست که بگه حرام است و از قضا اینکه همه احکام تابع مسائل و مفاسد نفس الامر ی هستند اینو هم اشعری قبول داره هم معتزلی قبول داره هم امامیه قبول داره این که میگن قبول ندارند که احکام تابع این مسئله مقاصده هستند در متعلق حکم قبول ندارند یعنی تمام احکام مستهر در جعل حکم است نه در متعلق حکم تو امامیه میگه نه احکام قادباً در متعلق گاه این در جعل حکم ولو خود اشعالی نمیاد نمیان خدا همینجوری حکم کرده اونا هم هر جا حکمی شارع صادر کرده است. یابیناً مصلحت و مفسدی بود رو جعل مصلحت رو به خود جعل در حکم میزنن یا نه لازمی نیست در متعلق احکام مصلحتی باشه اختلاف سر اینه اون همه قبول دارن احکام باید تابع مسائل و مفاصیل باشه خب باید ما مسائل و رو تشریح بدیم یعنی احکام دائر مدار ملاکاته. ملاک اگر بود ولی حکم نبود ما موظفیم عمل انجام بدیم تو اصول واسه ما مثال زدن اگر ارباب خانه، کار خونه را سپرده، گلامش رو بینن تا زور میان آم. اما در مورد بچه سفاری چی نکرد این بچه از اتفاق رفت حرف و عز. شنا بلد نیست که بیافته تو عضو گلام میبینه بچه داره قرق میشه اگه دست خون... نزد دست دست بذاره بیگه نه من کاری ندارم چرا؟ چون مولا صوب به من چیزی نگهرم با بچه من موازف باش نگرش دار و فقط که نون بکر آب به قضا درست کن جارو کن رفت بشو این کار بر برای بچهش حرفی نزه. حالا بچه رفت داخل سق و قف شد ظهر مولا از سر کار آمد بچه هم کو خفه شد چرا رفت تو آب چرا نگرفتی؟ به شما که آقا نگفته بودید بچه مو رو بگید چرا باید نون آب درست کن آیا عذر او مقبول است در نظر مولا و اقلا میگنده چرا؟ مولان میگه درسته که من به تو نگفتم بچه رمه تو نمیدانستی بچه من از غذابون و نو آب مهمتره و عزیزتره تو اینو نمیدونستی یعنی ملاک رو میدانستی ولا خطاب بگیر و نگه بهت نگفتن اما تو که میدانستی من بچه رو میخوام حفظ بشه اینکه گفتن لازم ندار بلی من محاکمت چی میکنم و اعلام میکنن. میکنم اگر من ملاک رو را کشف کردن تا کفایت میبینی در با اصول از دنس خارج مفصل نام مطرح میشه و و بریده هر که ما اگر علم به ملاک داشته باشیم ولی خطاب شریعه هم نداشته باشیم تکلیق ثابت میشیم ولی این بحث عنوانو گسترده تو همه حکم باید مدن نظر باشیم به این اون حکم مثلا در باب تعارض تعاظم تضاون کدوم مثل هر داره کدوم نداره کدوم مثل هر داشت بیشتری کدوم کم حالا خودم مصدهت معناشیه دیگه وقت گذشته نمیتون اینها بگم مصدهت و مقصده چند قسم داریم اینها را هم دیگه وارد نمیشم بریم سر پنجومی آخر وقت ما آقا در فقه باید فقه حکومتی و اجتماعی ملاک در استدلالات و دستنباتات موجهان و موظره بیدن اون این میفرمودن آن دیدن جانبیشتن همینه که دستنبات و بسات اداره نظام باشد نه اداره فقه افراد چرا؟ دلیل این هرچیه همه فقه ما تقریبا تا حالا بر اساس فرد زیر بکنند بکنن چه نکنن چی بر او حلاه بر او حرام جامعه چی کم کم در نشونده مرگوینای یه چند جملهی کر هم دوست کاش فرغ لا چند انجام می گفتفتن کم تا به عمام رسید و الان بحث هنوز هر چند بعض آن تو عضهداد قومت میکنن میگن آقا ما به جامعاجبار داریم. همه کتابهایی که تاشه بر فکر فربی فکر اجتماعی حکووممت ننی چی؟ هر فردی از خود انجام بید اجتماع اگر بر از هر چیزی دیگری است. اگر رابطه با اینکه آیا اجتماع واقعیتی جز فرد دارد یا نه؟ در کتاب‌های جامعه شناسی پنج تا نظریه مختلفه. چون من وقت ندارم بگم فقط نظر اسلام رو میگم. اسلام اعتقاد دارد هم فرد اصالت دارد هم جامعه. بعضی میگن فقط فرد اصالت دارد، بعضی میگن جامعه، از اون تفصیلایی دادن. بر اساس آیات و روایات ما استفاده میکنیم. اون چیز که از نظر دین و اسلام اصالت دارد هم فرد جامع هم فجام فرد اصالت داره که معلومه دیگه احکام آمد ما اصلاح بشیم کامل بشیم عبدالله بشیم بردالله بدکن بریم به ایش کسرم و به مقام فنا برسیم که واضح دوزیر نمیتوار اما جامعه هم اصالت داره جامعه اصلا واقعیت داره جامعه اصلا یه خصوصیت و شعن جدایی داره قیل از فرق آری دو سفا آیه من فقط بیخوانم لکل امتن اجلون عجل یعنی پایان افراد مرگ و پایان دارم مرد که مردون میبین همه ما بیمیرون این فرش این کموت این مولنگو من ببخاره ست سال بیست سال هزار سال کمتر بیشت لکل امتن عجلون امتها عجلی دارن شاید چون دقیقی مجاز هست نکیف مجازه چه قرین نمیشه دارین آیه دیگر کل امتن خود آیه را کتاب ها در قیامت همه ها با کتاب خودشون خوانده میشون نینگه افراد خانده میشون کل امتن امتی مجموعی سو مخاطبه کتاب خداست زین نال کل امتن عمله ما برای هر قومی و گروهی اعمالشان راضی نداریم قوم امت خوب در رابطه با جامعه فرق فقط این نکته قابل توجه است که جامعه واقعیت دارد وجود خارجی دارد ولو وجود انتظاهی این که هم جامعه بر فرد تأثیر دارد هم فرد بر جامعه تأثیر دارد حالا تأثیر جامعه بر فرد چیست؟ نه تأثیر بردی هایی داره وقتی نسمان یه قسمش بقید میگم تأثیر محیط خارجی موحیر هر جورو باشه انسان همونجورو بارمیان اگه به با نگفتن بچه همه بر فترت انسانیان و ابواه ما همه لزانه یو هفه دی و یو دی و یو بجستانه اگه نگفتن هنناس الان دینه ملوک جامعه تو اصلا میذاره دین اخلاق آداب رفتار اصل در چیلی آقا فرد به جامعه چرا ج... اصلا جامعه وجودی ندارد چرا؟ و حالا محیط خارج هم از اینکه محیط انسان اجتماعی باشد می فرهنگی و غیر فرهنگی یا نه محیط های طبیعی جامعه یه مدل باشه افراد جیجور یه بار میان فرق کنند اون شرائط آدمان فرق کنند از اون طرف فرق بر جامعه تأثیر دارد 6 تا تأثیر حالا این تأثیر من یکی دو تاشو بگم که ما جامعه اثر داریم؟ بله. یک در اون اعتباریاتی که واجد منشه حقیقی هست هزش های دینی اخلاقی حقوقی پیغمبر اون یه نفر بودن ولی جامعهاش رو عوض کردن پیغمبر یه نفر بودن پیغمبر هر زمان یکی بود دیگه وقتی می با تقریقات و فعالیت هاش جامعه را عوض می کرد و اثر می بزارد. در قدرت های اجتماعی انسان نمی‌تونه در جامعه‌اش چه در قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و تبیقادی تأثیر بگذارد. بگویید یه نفر کودتا می‌کنه، یه جامعه رو به هم می‌ریزه، نظامش رو عوض می‌کنه. تبیقادی، آقای، یه نفر سخن‌گوی کتاب می‌نویسه، عقاید مردم عوض می‌کنه. مثلا همه عقاید عوض می‌شه. یکی از تأثیر فرد در جهان بینی و ارزش که این عملاً در رابطه مسائل فقهی و منطقی مستوجب کلیم قرآن عجیبه تعبیراتی دارد که میگه اینها بود جامعه اثر دارند نمیگه رو فرد اثر یک اولا زمائر جمعی که تو قرآن آمده کم نیست کتب علیکم یذمو علیکم یا ای الذین آمنو یا ای ال انسان یا ایوم همه اسمی جمع آمده و در این نظر به تک تک افرادون تطبیق بکنیم ای جامعه اسلامی تو بعد دور باشید ای جامعه انسانی تو بعد دور باشید تعبیر قرآن زیباز اندر عشیرت کل اقربین اشیره یعنی قایفه و فامیل فامیل چه جامعه یه جامعه کوچیکه مگه فامیل بود خارجی داره ولی غیر از ذیگ و مجموعه اینا یه خاصیتهایی دارن که مجموعه دوم و سوم ندارن قرآن میگه اشیرت وره اقلالیم او از جامعه خود شروع اون اصلاحاتو انجام بده در مورد فرعون دارد وجه علا احل هاشیه ها کلمه اهل قرآن بکار بوده اهل فرعون اهل فرعون این زمان مردم زمانه فرعون او مردم خود را پاره کرد جامعه مگه یک کلیس که بیشه بیکپاره شو کنه یست از اف و تائفت هم کلمه تائفه تائفه چیزی دیگه باید اجتماعی دیگه به یه فرق او جامعه خودش را به استضاف کشید نمیگه افراد را به استضاف کشی یست از اف و تائفت هم فستخد فقاومهو فعتاو او. او قوم خودش را تحقیر کرد قوم و ملتش را تحقیر کرد نه تک تک رو یا میگه انه هم کامو فاسقین اینها کسانی هستند که فاسقند این جامعه قرآن نمیگه اون فرد جا فاسق است این جامعه فاسق است جامعه مگه غیر از فرد است اگه واقعا فرد بود خود رو کله واحد ملومه این که میگه کانو همولی فاسدین و تعبیرات پرابانی که دارن که اینجور صحیب با فشوته دارم این بحثا رو بخاطر تغییر بر نشد اون رو باید بیان کنیم احکام رفته روی جامعه چه آیات چه روایات مثلا بحثایی داریم در رابطه با حکومت و احکام حکومت روایات انا ماشا الله داریم آیات هم کم میسه. که حکومت چنین وظیفه ای دارد اداره جامعه باید اینگونه باشد اما جامع مگه تو خارجی داره جامعه ای که میکن ادارش کنی و جامعه غیر از فرد است اداره فرد غیر از اداره جامعه است شما یه موقع بچه ها خودتون تربیت کنید یه موقع یه مدررسسهخوا تربیت کنید ا فرق داره تربیت فرد یه ساز کار داره یه لواظ داره یه موقع مدرسه و مورد دانشگاه رو و کل جامع ا شما میخوا ااصلاح یا ترگر کنی یه راهکاره دیگه داره قوانی دیگه داره. روش برکورده های دیگه داره اصلاح جامع جامعه غیر از اصلاح فردی البته با هم مرتبط هم اینها ولی این که این جامع اصل وجود خارجی ندارد اثری ندارد خیلی هم وجود دارد هم اثر دارد هم مخاطب در صورت شده و خیلی از احوان بر همین اساس انجام شده رضا صحبت اونجا به پایان میبرند و نتیجه این میشود برادران ما باید فقهی بخوانیم که بر اساس حکومت و اجتماع باشد که در زمین او احکام فردی را هم بیاموزیم و یاد بگیریم. و اگر ما فقه حکومتی نداشته باشیم بسیاری بیش از از احکام اسلام تعطیل از قابل پیاده شده نیست و احکام فردی وابسته اونا هم قابل اجرا نیست. شما جامعه تون فاصل کجا هر چی بخواید بچه‌تون سالاد دیگه دور شما هر یه در محیطی باشی آرامش ترین بخواد دست بخوره نتونه دست بخوره اصلا خیلی از عوامل آر آرکی دست بخونه نمی‌دونین چرا خوش نمی‌می‌شه بگه بیا بابا تو خونه چه وقتی یه فرمانده کل قبا نمی‌زه‌ت فرمانده کل قبا که نمی‌ریت به ها میگه خانم‌ها میان فرغونده کل بچه نمیذاره صدا تلویزیون میاد نمیگونه صدای فلان میاد درو در باز میکنن میبردن ال آخر نمیتونه درست بخونه میگه تو خونه من نمیتونم درست بخونم باید برم بیرون یا تو کتابخونه یا برم تو پارک یه ای درس بخونم آن اگر شما تو خونه باشی نمیتوانی درست بخونی و خونه دو طبقه داشته، طبقه بالا پایین دائما میان بالا میان پایین میگن میخوان درس یه چای بخور یا کوسه کمپون یا بچه بچه‌رو بگیرید، سه‌ت تلویزیون کمپورس دست نمیشه به آینه. همه جامعه کوچک خانه. اگر اسلام نشود، فرد هم اصلاح نمی‌شود. نه درس می‌تونی بخونی، نه عبادت خوبه بری بیرون. و تا بدون دست بخوانی. که حالا مباحث مفصلی دارد فلسفی، اجتماعی، رواچراسی، شرقی و غربی، اسلام در ایران، تشیع و تسنن و مباحث فراوانی امیدوارم به خدای متعال به همه ما توفیق بده با توجه به این فکتورها و ملاک‌های پنجگانه ده تا کتاب‌ها مباحثون مثلا اساسی تنظیم بکنیم که ان بعد از 10 15 سال از قوزو اومدیم بیرون به درد جامعهمون بخوره مشکلاتات که نمی‌شه آقا این جوان‌ها بی دین شدن به ما چه مربوطه کی گفته بی شدن ماها باید بتون جواب اینا رو بدیم ما اینا رو پس نکویم کی می‌خواد اینا رو پس ما جواب ندیم مشکلات اینا رو کی می‌خواد جواب بده رضا بر همه ما مخصوصاً اساطیر و بزرگوارانی که جنبه تدریس تربیت و آموزش فنون و ریش‌های اخلاقی اند، باید ما رو تو این راه ها بیاندازن که ان شاء فقه ما بشه فقه و موثر. در خطبات روستم دارن پاسخ به سوالات حساب میدن. مفاسد و شریع با مسائل و مصالح مخصوصه ما در دین رویشنایی یکیا انتزاع هم مقاصد و است مقاصد یعنی نیت اون وازع و مولا از جعل احکام و مصد مادی قرار است لذا شاره بر اساس مساله و مقاصد واقعی مقصود خودش را می و جعل می کند و می فرستند در ولی دو چیز ولی با هم و بی بستن سوال ها رو دادن محمد و عالم طیبین سلام. که شما با